گویا محمد علوی سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه ما با شما هستیم با یک داستان دیگه از کتاب فرهنگ افسانه‌های مردم ایران امیدوارم که تا پایان ما رو همراهی کنید و همین داستان چوپان و فرشته در افزانه های ایرانی از کمک قهرمانی فرشته کمتر استفاده شده. گرچه که شکل ظاهری برخی از کمک قهرمان ها مثل فرشته است و مثل پرندهی که به شکل دختری در میاد اما از اونها به عنوان فرشته یاد نشده. در قصه چوبان و فرشته که قصه پنداموزه کمک قهرمان اصلی یک فرشته است. در قصه ها خوبی همیشه عوض داره و در این قصه هم زورمند شدن چوپان در عوض مهربانی و خوبی اون هست. پیرمردی بود که یک پسر رنجور و ضعیفی داشت هر کس به اون می رسید آزارش میداد و اذیتش میکرد چون ناتوان بود زورش به کسی نمیرسید بعد از مدتی پدرش از دنیا رفت و چون چیزی نداشتند پسر خودش گله گوسفندا را به سحرا می برد چیزی نگذشت که شوبان دیگه اون را از زمین های پر علف بیرون میکردن و اون هم ناچار شد که گله کوچیک خودش رو در جه های دور و کوه ها و جنگل ها بچرونه. یک روزی در جنگل انبوهی مشغول چروندن گوسفدا بود و ناگهان چشمش به زنی افتاد که زیر درخت بزرگی خوابیده بود. زنی بود که در میون زنه ده هرگز ندیده بود، لباس آلی و گرون قیمتی داشت کفش های گرون قیمت تیماج بپاداشت و چون که سایه درخت برگشته بود آفتاب نیمروز صورت اون رو می سوزند. پسرک دلش برای اون زن سوخت و شاخه از درخت ها که برگ داشتند رو برید و آهسته سایبونی بالای سر اون زن درست کرد اما چیزی نگذش که زن فرشت صورت از خواب بیدار شد و سایبون رو دید و وقتی که اطراف خودش رو جستجو کرد پسر رو دید و گفت چطور شد که به فکر آسایش من افتادی؟ پسر گفت چون دیدم اهل اینجا نیستی فهمیدم روح رو گم کردی و خسته هستی دلم سوخت و براتی سایه بون درست کردم اون زن که فرشته بود از این جوان و مهربونیش خوشش اومد و گفت معلوم میشه که آدم خوبی هستی حالا عوض این خوبی که به من کردی هرچی میل داری آرزو کن جوون گفت من احتیاجی به چیزی ندارم ولی اگر ای فرشته خوب میخوایی به من کمک کنی من رو نیرومند کن تا گستنده خودم رو هر دلم هم میخواد به و کسی نتونه ازیتم کنه فرشته گفت خب هرچی خواستی انجام شد حالا زور خودت رو آزمایش کن جوون رفت نزدیک درختی که تا اندازه ای تنومند بود اون رو گرفت و با یک زور از ریشه کندش بعد فرشته گفت حالا بار اون سنگی رو که روی تپه قرار داره جابجا جا کن جوون رفت و به تخت سنگی که فرشته نشون داده بود زور آورد و تخت سنگ رو از جا تکون داد فرشته فریاد زد چیکار کار می مواظب باش اگر بیشتر قلش بدی سنگ از جا کنده میشه و ده رو خراب میکنه. به مردم آزار میرسونه. مواظب باش که از زور در موقع لازم و به منفعت مردم توی کارهای نیک استفاده کنی. کسی رو آزار ندی و با کسایی که به مردم ظلم میکنن جنگ کنی. فرشته این رو گفت و ناپدید شد. جوون از اون روز پهلوون پرزوی شد و پند فرشته و هرگز فراموش نکرد و تا زنده بود از زورش در کارهای مردم و آسایش اهالی ده استفاده می کرد و نمیگذاشت که کسی اشخاص ضعیف رو آزار اذیت کنه خب دوستان عزیز به پایان این داستان رسیدیم در آخر منبع این داستان رو هم ارز می کنم که کتاب امون و روز صفحه 38 گردآورنده این اثر فضل الله صبحی بود و از انتشارات امیر کبیر چاپ دوم سال 1341 انتشار پیدا کرد دوستان عزیز شما رو به خدای مهربون میپرم خدان کردار سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها